تاریخ چه رسول اکرم تاریخ چه عجیبی است پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب عبدالله پسر عبدالمطلب است تسر بسیار رشید و برازنده که حالا داستان اون مسئله نظر زدهشوی حرفا بماند الله جوان. جوانی بود که در همه مکه می درخشید جوانی بود بسیار زیبا بسیار رشید بسیار معذب بسیار معقول که دختران مکه آرزوی همسری او را داشتند ازدواج می کند عبدالله جوان با مخدره آمنه آمنه دختر وهب که از فامیل نزدیک و اونها به شمار میان و با آمنه زفاف میکند با آمنه زفاف میکند در حدود چهل روز بیشتر از زفافش نمیگذرد که به عظم مسافرت به شام و سوریه از مچه خارج می شود و ظاهرانم سفر سفر بازرگانی بوده است. در برگشتن میاد به مدینه خیشابندان مادر عبدالله در مدینه بودند. میاد در مدینه و در مدینه وفات می کند. عبدالله در وقتی وفات می کند که پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد یتیم به دنیا میاد یعنی پدر از سرش رفته است بهرسم اون وقت عرب که برای تربیت کودک لازم میدانستند بچه را به مرزعه میدهند که به بادیه ببرد و در اونجا شیر بدهد حلیمه سعدیه، حلیمه، زنی از قبیله بنی سعد از بادیه میاد به مدینه که اون هم داستان مفصلی دارد این طفل نصیب او می شود که خود اون حلیمه و شوهرش نغلی داستان داستانها که از روزی که این کودک تا به خانه ما گذاشت برکت گویی از زمین و آسمان به خانه ما میبارید تا سن چهار سالگی این کودک دور از مادر پدر که نداشت و دور از جد و دور از خیشاوندان و دور از شهر مکه در بادیه در میان بادیه نشین پیش دایه زندگی می کند در تن چهار سالگی او را از, از دایه میگیرند مادر مهربان این بچه رو در دامن خودش میگیرد شما حال امنه رو در نظر بگیرید زنی که شوهر محبوبی دارد و به اصطلاح شوهر ایدالی داشته است به نام عبدالله که اون شبی که ازدواج میکند به همه دخترهای مکه افتخار میکند که این افتخار بزرگ نصیب من شده است هنوز بچه در رحمش است این شوهر را از دست میدهد برای زنی که علاقه وافر به شوهر خود دارد بدهی که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوبش است خصوصا اگر این بچه سر باشد آمنه تمام آرزوهای خودش رو در عبدالله در این کودک خردسال میبیند آمنه هم که دیگه شوهر نگی جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا متکفل آمنه هست و متکفل رسول خدا این کودک کوچکم هست عامله از عبدالمطلب اجازه میگیرد چون قوم خیشه های او هم در مدینه بودند سفری برای دیدار خویشاوندانش بیاد به مدینه به این کودک رم با خودش ببرد همراه کنیزی که داشت به نام ام ایمن همراه قاپله حرکت میکند میاد به مدینه دیدار دوستان را انجام میدهد سفری که پیغمبر اکرم در کودکی کرده همین سفر است که از مکه در کودکی دستند پنج سالگی آمده به مدینه بعد با مادر و کنیز مادر بر در بین راه منازل مکه و مدینه در منزلی به نام ایوا که الان هم هست این مادر مریض می شود. و هی ناتوان می شود. قدرت حرکت پیدا نمی کند در همون جا وفات می کند این کودک خورسال مرگ مادر را در خلال مسافرت به چشم خودش می مادر را در همون جا دهت می و همراه ام ایمن کنید مادرش بر میگردد به مکه این قضیه یکی می پنجاه سال از این قضیه تقریبا گذشته بود یعنی چون در سول اکرم در سن پنجاه و سه چهار سالگی بود که آمدند به مدینه نمی درد سال دوم هجرت بود سال سوم هجرت بود یه سفری از سفرات و غنبر اکرام آمد از همین منزل ایوا و عبور بکنم تا این آمد اصحاب دیدن پیغمبر بدون اینکه با کسی حرف بزند به یه طرفی روانه شد بعضی ها در خدمتش آمدن ببینن کجا می روز. دیدن آمد و آمد و آمد به یه نقطه ای که رسید اونجا میشه. شروع کرد خوندن دا خون، خوند، هم خوند، قلوب الله دیگه من نمیدونم. قرآن خوند ولی دیدن در یک تعملی عمیق فروره به همون نقطه زمین توجه خاصی دارد و هی دارد با خودش میخاند استقار میکند مثلا دیگه نداشتن چی ولی وقت نگاه کردن کم کم دیدن عشقهای نظرینش از گوشه چشمش جاری شد دیدن درد میگرید یا رسول الله چرا میگرید گفت این قبر مادر منم در تنجاه سالیش من مادرم رو در اینجا دفن میکردم